ایران بازنگری در تاریخ قلم رو بمیانی شما یه مهدی رو باید با ابزارهای مثل هرمنوتیک و پدیدارشناسی تفسیر کنید، تعویل کنید و اون قباری که چون اسطوره یه تاریخ قباری گرفته است اون قبار رو باید به و تاریخ رو از اون در بیاریم. این میت اصلا یک چیز ببخشید میتولوژی بخواهی معنی کنید این حالا اصلا یک چیز بیخودی همون به درد خود غربی ها میخوره شرقی ها و حالا الان ما اینجا ایرانی هستیم ایرانی ها به این باور و اعتماد به نفس برسیم که سب کسیاق مطالعه و, مطالع و پژوهش خودمون رو پیدا بکنیم. به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید رادیوی اینترنتی قسمت پنجم برنامه ایران وج رو ما در خدمت شما هستیم در چهار قسمت گذشته با مقدماتی وارد بحث شدیم طرح بحث کردیم اهمیت این بحث رو خدمت شنوندگان عزیز و به همراه کارشناسان برنامه عرضه داشتیم و گفتیم که هدف ما از این برنامه چیه بازشناسی تاریخ قلمرو میانی و هدف اونام اصلا این نیست که بگیم این قلم رو حالا ایران خب درست ما الان توی قسمت ایران داریم زندگی میکنیم ولی معتقدیم که بسیاری از ملل همسایه، اقوام همسایه که به خاطر سیاست های استعماری و همچنین بی تدبیری های خودمون تبدیل به دشمن همدیگه شدیم و تبدیل به رقیب هم دیگه هم شدیم در حالی که تاریخ مشترک داریم، اجداد مشترک داریم، چه تورک، چه فارس، چه کورد، چه حتی حتی, حتی ما مردمانی از دنیای عرب رو هم داریم که در این قلم روی میانی جای دارن و اجزادشون نقش داشتند در شکل گیری این تمدن عظیم و این تمدن پر افتخار باز هم در اول قسمت پنجم این برنامه از منتقدین و از کسانی که نسبت به محتویات این برنامه نسبت به نظریات و نسبت به مسائل و فکت هایی که در این برنامه مطرح شده انتقاد دارند بیان تشریف بیارند در خدمتشون هستیم قدمشون بروی چشم و امیدواریم که در یک فضای آرام و در یک فضای کاملا علمی به گفتگو و مناظره بپردازیم و کارشناسان این برنامه آماده هستند که در خدمت شما باشند همونطور که عرض کردم در دو قسمت گذشته ما گفتیم که اصلا ایراد این تاریخی که حالا استعمارشون حالا خود بنده حالا کارشناسون کاری ندارم قطعا نظر داریم بنده خب خیلی به ای که کاملاً استعمار نقش داشته توی این مسئله بله نقش داشته قطعاً ولی 100 درصد من اعتقاد ندارم معتقدن که ما خودمون هم نقش داشتیم خیلی نقش داشتیم اصلاً تقصیر اصلی تقصیر خود ما هست و به قول مرحوم ملکشاهی بهار از ماست که بر ماست و از به حضورتون که دلایلی که این تاریخ تحمیل شد این نوع تاریخ تحمیل شد و در مدارس و دانشگاه‌های ما تدریس میشه رو پرداختیم رسیدیم به عیوبی که باعث شده چنین تاریخی ما تحمیل بشه یکی از اویوبی که کارشناسان محترم برنامه به اون تاکید داشتن این بود که ما منابعی که در اختیار داریم رو درست ازش استفاده نکردیم یه نمونش استور بود که این استور شناسی میتونه قبارزدائی کنه از تاریخ و تاریخ رو به ما نشون بده در این قسمت خوشبختانه هر چهار تا کارشناس در کنار ما هستند جناب آقای ایران مهر، سرکار خانم دکتر احسانی، جناب آقای کریمی و جناب آقای فیروزی. فکر کنم از جناب آقای ایران مهر شروع کنیم. جناب آقای ایران مهر، تعریفی رو شما از استوره در برنامه های گذشته مطرح کردید. اگه ممکن هست این مسئله که آیا استوره اون تعریفی که توی قرم شده و اون شکلی که به جوامع شرقی گفته شده و اینکه برخی از متددهای تاریخی اونها رو به شکل افسانه یا میت یا تاریخ یا یه تاریخی که برای سرگرمی و در واقع برای اینکه یه افتخاری هم حالا بکنن به این نشانا ولی نشانه وجود خارجی نداره تحمیل کردن فرمودید اگه ممکن هستش اینو بازتر بفرمایید چون خیلی این مسئله مهم هستش و نقش داره توی بازشناسی تاریخ قلم روی میانی و به خصوص این فلات ایران با درود بر شما و شنوندگان گرامی خوش که در خدمت کارشناسان بزرگوار برنامه هستیم بله در نشسته گذشته ما یک خط فرضی رو تلاش کردیم رسب کنیم از امروز به گذشته که اونو به بازه های تاریخ استوره افسانه و در پشت سرونها جهان باورها بخش کردیم بله و گفتیم که اون ترجمه میت و میتولوژی اگر هم درسته برای همون جهانی درسته که این ساخته, شده. ساخته شده بله همون مفهوم رو میرسونه من مرد میخوام که بیاد واژه رند رو به انگلیسی ترجمه کنه بله اصلا نشدنیه امکان نداره با ده تا جمله دربارش بگی بنابراین اون برای خودشون ما واجه های خودمون رو داریم. بله مثلا خود بنده از زادگاه خودم آذربایجان واژه‌هایی رو شما برای شما بگم. بله. مثلا شما یکی منطقه ای که مثلا با زبان و گویش پارسیز، مثلا ن... عمران بتونید براش بله. در واقع همینه چون بله، هر سبک شماست. زندگی درست. یک سری واژه‌هایی تولید میشه و اون واژه‌ها برای اون سبک زندگی و اون سبک از علم و زیست هستش. بله, بله. حالا این مثال یه مقدار دورتر هم هست دیگه چون ما اینجا اصلا بحثمون بحث های داخل ایران نیست. اون هم خودشون خوب می‌دونن خودشون بالاخره بله. خود و فوکوک دیرینشناسی دانش رو خودش در واقع فهمیدن و دیرینشناسی بله. تاریخ این مسائل رو کاملا جواب داده. بله بله. حالا واژه‌ای که تو فلات ایران به ویزه به کار می‌رن که خیلی نزدیکن اون چیزی که به نام ترکیه آذربایجانی در شمال غرب صحبت میشه یه بخش عظیمش واژهای آذریه که اینا همه یک ریشه با این مثلا کوردی کردی داره با بلوچی داره با همه گویش های درون این فلات داره اما اون زبان انگلیسی هم خب حالا برحال از همین شاخه زبان هایی که از هند تا اروپا گسترده هستن اما در این حال چون این واجه میتولوژی در اون فرهنگ تولید شد و مستاق پیدا کرد برای این عنوان ما خیلی نمیتونیم اونو به کار ببریم در باره تاریخ و تاریخ نویسی خودمون. بنابراین ما توضیح دادیم جهان باورها که بعد واردش میشیم یه بخش خیلی مهمیه این نبرد تاریکی و روشنایی که بعدها رفت به غرب و به نام تز و آنتیدز رو گفتن این شد و اون شد و کلی هم شاخ و بال بشتادن هیچی هم نگفت ریشش از کجاست افسانه رو گفتیم معناش اصلا میتولوژی نمیشه حالا دو مطلب دیگه میمونه یکی تاریخ و اسطوره بله در پایان نامه‌ای که آیه سونافی در دانشگاه تهران ارائه دادن یکی از بزرگواران استادشون بود گیر داده بود که تو چرا تو پایان نامه اسطوره رو با تا ننوشتی با تای معلف نمیسی با ت دو نقطه نوشتی گفتم اولا شما از یک پایان نامه 600 صفحه گیر و رفتی رفتی گشتی همین رو پیدا کردی اولا که این تای دسته دار پهلوی خط پهلوی اشکانی اون ت دو نقطه خط پهلوی ساسانی ش فرقی نداره لطف شما خودیمونه شما اصلا با هر کدوم شو سؤالی ببینید تهران رو هم با تای مؤلف میو با عربی نیست, نیست. همه‌شون ایرانی حالا ما بحثمون این نیست منظور سر معناش واجی تاریخ خدمتون بگم که این از کجا آمده یه نقل غالب هست که یعنی از نظر استوار بودن میگم قالبه حالا اینکه تو عفو عمومی جاری هست یا نه کاری نداریم اصولا اون چه که ما میگیم اوا مردم فکر میکنن که عربیه ببینید تا ما مثلا کتابای استادای مثل استاد دکتر آذرتا شازرنووش رو نخونیم واژگان دخیل فارسی در قرآن، واژگان فارسی دخیل در فرهنگ عرب جاهلی تا کتاب واژگان فارسی عربی شده ال سید ادی شیر که ایشون اهل کرکوک بودن و حدود 100 سال پیش توسط عثمانی‌ها کشته شدن تا ما این جور کتاب‌ها رو نخونیم اصلا اجازه نداریم بخوایم اظهار نظر کنیم در باری که چی عربیه چی نیست چطوریه بنابراین بیشتر واجهگانی که ما فکر کنیم عربیه همون فکر کنیم عربیه در همون حده بله. یکی واجه تاریخه که میگم اون نقلی که استوارتره اینه که خب ما واجه محروچ یا محروز رو که در پهلوی داریم نقل بین زبانشناس ها که محروچ تبدیل به محروخ و بعد مورخ شده و واجه تاریخ از این واژه گرفته شده از مورخ بله از همون مورخ یعنی اول مبرخ ساخته شد از ماهروچ و بعد تاریخ از این گرفته شد حالا به حال کاری نداریم این تاریخ ما منظورمون همین چیزایی که اصنادشو در همین بعد از اصراهن در دست داریم یا اون چیزی که در مصر از به ساب دوران مسنو مسنو فلزه مسنو در دست داریم یا تاریخ میانرودان یا تاریخ هن. اینا تاریخ اون چیزی که افسانه هم تقریبا توضیح دادیم بعدا ما تاریخ ایران رو بر همین اسطوره ها تعریف خواهیم کرد و همین افسانه هایی که در دست داریم حالا اینجا بعد یه مسئله دیگه ای که در انگلیسی استوری رو تاریخ معنا میکنن در صورت که استوره در ما پشت سر تاریخ معناش میکنیم یعنی اون تاریخ بی زمان میدونیم این استوری اونا و استوره ما که بعد میگن استوری شده معرب بعد دوباره ما استفاده کردیم برای همین هم است با تایید دست دار نوشته میشه. این یک مقلته به نظر من. استاد بامدالی سجادیه توی یک از سخنانی هاشون ده سال پیش بیماری پیخوره دارن. ام اس من امیدوارم که واقعا بهبود پیدا کننشون استاد ارزشمندین. ایشون نقل میکردن در اون سخنانی که استار به معنای ستاره است. بله. واجه استوره هم که به کار برده می شود و برای نمونه می گویند فلانی استوره زمان خود است از همین واجه است به این معنا که او ستاره زمان خود است همچنین بیماری داریم به نام هیستریا به معنای ستاره زدگی گونه سرعه واجه دیگر هم در انگلیسی داریم که هیستوریست به معنا تاریخ و این واجه هم با ستاره یا استار پیوند دارد بدین گونه که در روزگار باستان ستارگان نقش مهمی در تاریخ داشتن همون مسئله ای که بله. برای نمونه می گفتم فلان ستاره در فلان برج بود که فلان رویداد رخ داد همون مثل قمر در عقرب و یا چی این چیزا که میگن بنابراین ایشون ریشه واژه اسطوره اینجا کامل توضیح میدن و ما میبینیم که چیز غریبی نیست یک واژه مشترک میان این فرهنگ ها و جای به جای حرکت نکرده ما داشتیمش همچنان هم داریم این توضیح بود که من میخواستم در این باره بدم حالا ما از این اشتباه ها زیاد میکنیم برای مثال من یکی از دوستان خودم فوق دکترای تششع گرفت از دانشگاه منترال یعنی همینجا ایران که بود انگلیسیش فوقالاده بود اونجا هم که رفت که دیگه چندین سال کامل شد زمنان فرانساش هم کامل شد اومد به ایران گفتم تو که اینقدر مسلط به این دوتا زبانی چقدر اشتراک میان فارسی ما و مثلا انگلیسی میبینی گفت هیچی هیچ اشتراکی نمی بینم گفتم تو مشکلت البته این نیست که انگلیسی نمی من میدونم دونم انگلیسی دیگه الان در حد عالیه شما الان مشکلت اینه که فارسی نمیدونی. من؟ یعنی از بچه بزرگ شدی یک چیزایی رو برای محاوره یاد گرفتی و در همین حد باشم تو یه رشته فنی رفتی تا فوق دکترا شما فارسی یاد نداری چون اگه یک کم فارسی یاد داشتی این همه اشتراک که بچه بچه‌ها هم دیگه میدونن پردیس و پارادایس و برادر و برادر و مادر و مادر و اینار که دیگه همه میدونن که تو حتی اینا رو هم نمیدونی خدمتتون بگم یک توجه تو این واژه‌ها حالا شما بگین اسطوره مثلا حالا دکتر سجادی چیزی گفته یا ایشون از خودش درآورده نه ببینید ما توجه نمی نمی‌کنیم چرا ما مثلا صداسی ما ما ماشاءالله تا درستون بخواد واژه آرشیو رو به کار میبره دیگه And مثلا اصلا تو حالا توجه کردیم آرشیو خب واژه انگلیسیه این شباهتی با اون آرشه ویولون داره میتونه داشته باشه چرا داشته باشه آرشات دیگه اونم یک کمانی بوده که یه ذهی بهش می‌بستن و اینو می‌کشیدن آرشیو یا بایگانی هم جاییه که یه جای گمبد مانندیه که زیرش اسناد رو نگه میدارن همون بایگانی خودمونه شما مثلا واژه آرک رو هم دارین دیگه اون کمان رو محاسبه میکنن خب همین رو ما تو آرشیتکت هم می‌بینیم یه کسیه که طاق می‌سازه حالا صد سال پیش معمار ها و آرشیتکت ها تاق می سان. حالا دیگهیه شکلای دیگه شده معماری پیشرفت کرد. یعنی شما واژه آرشه رو تو آررشو میبیید تو آرچه ویولون می بینین؟ تو آرشیتکت می بینین؟ یک واژه انگلیسیه که تو همه اینا هست ما همش هم به کار میبریم بدونید که دقت کنیم که اینا شا انگلیسی خودشون بدونن ما که انگلیسی یاد میگیریم به اینا دقت می حالا این واژه هم همینطوره ببینید بر مثال واژه هنر. من یک این توضیحات رو میدم برای اینکه بعد چون ما میخوایم روی این استوره تکه کنیم دیگه بعد دو ما نگن که اصلا واجدتون هم کشکی بود همیجوری چیزی گفتین واژه هنر ما امروز مثلا میگیم هنر خد هنر نقاشی هنر سینما در صورتی که خب هنر در فرهنگ ما مثلا در دیوان حافظ و حتی گذشته یک معنای خیلی بسیتر و کلیتری داشت مثلا هنر زندگی هنر آمد. جنگ مثلا حالا اگه اون بس افسوده نباشه جمشید میگه که هنر در جهان از من آمد پدید چون من تاجور تخت شاهی ندید چون این گفته شد فر یزان زعوی به تابید و جهان شد پر از گفتگوی داره از هنر میگه هنر در جهان از من آمد مزوش مثلا نقاشی و موسیقی و شعر که نیست که من. خیلی چیزا رو داریم میگه که حالا ما بعدا تو بخش خودشی میگیم که اون دوره چه دورهی بوده یا واژه شما فرض کنین نجات یه بحثیه دیگه ما هیچ‌وقتم به این دقت کنیم واژه نجات با مفهوم امروزیش از حدود قرن 19 و تو اروپا بویده تو فرانسه رواش پیدا کرد واژه نجات تو شاهنامه فردوسی بیشتر معنای هویتی میده و تفاوت میان ایرانی‌ها و غیر ایرانی‌ها رو از لحاظ فرهنگی نمود میده برای ما اون چه که بتونیم امروز درباره باره نجاد ما بگیم واجهی که ما میتونیم بگیم اگه اون موقع به کار میبیدفته بیشتر واجهی چیسره یا چهره بوده اونم باز نجاد مثلا خیلی چیز نبوده محضوعی بوده که تو پدر بزرگ منی مثلا رستان به سام میگه که به چهره تو ماند همین چهره هم داره میگه که ببین در این حد به کار میرفته من اینا رو بگم که یا مثلا واجهی منو و چهر خودش معنا داره حالا ما میرسیم که اون چی رو داره نسبت میده یک نسبت تقریبا تباری رو داره میگه باز نه به معنایی که الان ما واژه نجاتو به کار پس میبینیم که واژه ها یه مقدار باید روشون دقت کرد دیگه ما تاکید کردیم رو واژه میتولوژی استوره رو توضیح دادیم اینا میخوایم می بگیم که اینا یه مقدار میشه روشون بیشتر دقت کرد و بعد ما دائم به اسطوره ها بازگشت دادیم شنوندگان اینو به به حساب افسانه و دروغ و نبودن و اینا تعبیر نکنید حالا چون شما فرمودین من اینو توضیح دادم خدمت دوستان دیگه هم عزیز بدین استفاده کنید هست خش. که خارج می‌کنم خیلی متشکرم جناب آقای ایران مهر عزیز استفاده کردیم در مورد همین بحث استوره و تاریخ باز هم خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که ما اینجا خیلی استرالی نداریم که قطعا این حرف ما صحبت‌های ما وحی منزل هستش دوستانی که نکته انتقادی دارن حتما منتقل بکنن از طریق ایمیل امید.com هم دکتر انسانی در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و متشکریم از حضورتون. بحث هایی که در مورد شناسی ما چه برنامه گذشته با شما داشتیم جناب آقای ایران مهرم داشتیم و بقیه دوستان چه تجربیاتی در کشورهای دیگه در این مورد وجود داره؟ چه پژوهش‌ها و تحقیقاتی در مورد همین بحث شناسی و باستان‌شناسی توی تاریخ در کشورهای دیگه صورت گرفته و نتیجه داده که میتونه در واقع الگویی برای ما باشه تا اینکه ما هم بتونیم با سناسی کنیم تاریخ خودمون. با درود به همه شنوندگان ببینید من میخواستم کلن حالا اینکه پرسیید کشورهای دیگه خیلی خوب شد شد من میخواستم امروز دو تا کتاب معرفی بکنم درباره این حوزه کلی بحثمون و حالا وارد بحث که شدیم من از این کتاب یه سری نقل قول خواهم آورد در پیوند با همین بحث و پرسش که شما فرمودین یک دانشمند آمریکایی داریم به اسم آقای ادوین بریانت فکر کنم صحبت هم شد جلسه پیش این آقا جوز کسانی هستند که ایشون هندشناسان. هن. و جوز کسانی هستند که معتقد هستن به یک ای که موضوع جدیدیه تقریبا به اسم نظریه آریاییان بومی و وقتی میگن آریاییان بومی منظورشون بومی هنده ایشون کاملا حوزه تخصصشون هنده هنشنابه. دو تا کتابشون اولیش که سال 2001 چاپ شده آکسفورد پرس چاپش کرده هستش جستجو برای ریشه های فرهنگ ودایی دومی دو کتاب همیشون سال 2005 منتشر کردن البته دومی دو در واقع مجموعه مقالات میشه گفت، هست نه که کتابی که حالایشون نوشته باشن که هستش مثلا میتونیم ترجمهش بکنیم چالش های هندو آریایی که یه مجموعه مقالاتیه مقاله های مختلف به همین نظریه مهاجرت و حالا زبان اقوام آریایی باستان شناسی در برای آریایی ها اینا این کتاب رو گفتم سال 2005 چاب کردن ایشون و ایشون در واقع ویراستار این کتاب هستن مجموع مقالات رو جمع کردن ویرایش کردن و یه متیجه گیری خیلی خوبی برش نوشتن توی کتاب نخست کتابی که سال 2001 چاب کردن یک موضوعی حالا من اینجا به استوره که داریم اشاره میکنیم ما فرض رو بر این میگیریم من نظر خودم رو دارم میگم فرض رو بر این میگیریم که عهد عتیق سفر پیدایش حالا میتونه که از دید برخی استوره پند داشته بشه اگر این دید رو داشته باشیم آقای بریانت میگه که توی صفحه 14 همین کتاب که سال 2001 شاب کرده میگه که برای حدوده من حالا از این روی همین متن کتاب تقریبا همینطوری ترجمه میکنم ببخشه در خیلی خوب در نیاد میگه برای حدود یک هزاره بیشتر اروپایی آداتیق رو به ویژه اون سفر پیدایش رو این رو سند تاریخی یک جوری سند تاریخی هویتی برای خودشون می‌دونستند. این تاریخ می‌دونستند. بله بله و خیلی کلا اصلا ذهنشون دانش اون روزشون همه اینا بر اساس آداتیق و به ویژه پیدایش بشر و اینها رو بر اساس سفر پیدایش در واقع مستند میکردن یعنی واقعا براشون سندیت داشته تا جایی که مثلا فرض کنید مثالی که میده در زمینه زبان میگه که سال 1610 یک دانشمند زبانشناسی به اسم سکلایگر حالا اگه درست اسمشو تلفظ بکنم میاد زبانهای اروپایی رو 11 زبان اروپایی رو با همدیگه مقایسه میکنه و به این نتیجه میرسه که اینا از یه ریشه آنو گروه بندی میکنه، 11 تا گروه زبان اروپایی تشخیص میده اما چیزی که خیلی جالب اینه که و بعد در نتیجه میگه که این یازده گروه زبانی همشون یک منشأ مشترک دارند که ابریست این یک نظریه که سال 1610 داده شده راجع به یازده گروه زبان اروپایی حالا چیزی که هست میگم برای ما ما فرض میکنیم که اهدایتی یک مجموعه چروه باشه ولی میخوایم ببینیم که برای یک سری مردم در حدودای مثلا همون سال 1600 و به قول بریانت به مدت اصلا یک هزاره نه اصلا حالا 1600 لزومن این چیزهایی که ما الان فکر میکنیم استوره است براشون تاریخ بوده حالا کاری ندارم که این بحث به چه نتیجه خواهد رسید من فقط اینو به عنوان یک مثال گفتم برای که میخوام وارد یک حوزه دیگه بشم و اونم اینه که این مردمی که این کتاب رو برای خودشون تاریخ میدونستن منشأ من. پیدایششون میدونستند. اینا در دورانی که هند مستعمره بود میرن هند و وقتی که میرن هند این خلاص انگلیسی ها اونجا می بینن که با متون سانسکریت آشنا میشن اول و وقتی که می بینن که زبانه هاشون یعنی بالاخره شروع میکنن به کار کردن اول شباهت های خیلی کوچک اول پیدا میکرد بعد یواش شبها شروع میکنن کارهای بزرگتر کردن و میبین که، زبان اینها ها زبان های اروپایی برخیشون با این زبانی که الان تازه را اومدن یه جای دیگه دنیا دارن میبینن با این هم ریش است و اینجا اصلا یک سری های دیگه وجود داره داستانهای دیگه وجود داره بشر مثلا پیدایشش فرض کنید اینها خیلی جدی معتقد مثلا حالا فرض کنید به وجود آدم و هوا بودن و حالا سرزمین هایی که در عهد عتیق نام برده شده یه دفعه میان اصلا با یک دنیای دیگه مواجه میشن و بریانت میگه این برای اروپایی اون دوره یه بوده از نظر هویتی یعنی بله واقعا دوچار شک هویتی میشن وقتی میبینن که تمام اون چیزهایی که فکر میکردن و بر اساسش تاریخ نوشتن یک سری علوم رو پدید اووردن اینا همش اصلا روحواست و اونجا میشه که بریانت معتقده که اونجا میشه که اینا شروع میکنن در واقع بازنگری در حالا اون علومی که داشتن در تاریخ و زبان شناسی و دیین شناسی و غیره شروع میکنن بازنگری کردند. و در این بازنگری ها بر اساس حالا میگم این کتاب این آقا قرض ورزی وجود داشته یعنی اینا نمیتونستند. قبول بکنن خیلی واضح و آشکار حالاتش صفحه ای نمیدونن ولی میگه نمیتونستن قبول بکنن که مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی که شاید برای ما اصلا خیلی الان امروز مثلا نظر علمی کودکانه باشه ولی اونا خیلی براشون سخت بوده قبول بکنن که فرض کنید سانسکریت قدیمی تر از یونانی باشه یا متونی که مثلا وداها قدیمی تر باشن فرض کنید حالا از عهد کتاب مقدس خیلی براشون پذیرفتن این چیزا سخت, سخت بوده دروامه بود. میگم در دنیای علم امروز شاید کودکانه باشه فکر کنیم حالا اول من بودم اول تو بوده اینا ولی توی اون دوره این واقعا بحث بوده یعنی واقعا برایشون دشوار بوده پذیرفتن این و میگم آقای بریانت مثال های خیلی فراوانی میزنه نقل قول میکنه دانشمندای مختلف که نه اگه میشه اینا قدیمی تر باشن ما اول بودیم و از این حرف های کودکانه و مثال هایی رو ارائه میدن. من خیلی حالا ب... نمیخوام دیگه دقیقا واقعا پله به پله این کتاب رو بخوام مثلا نظریات مختلفی که توش اومده همش رو مطرح بکنم نه هدف در واقع دادن یک نوع میتودولوژی بوده که بله میخوام خیلی سریع برسم به اینجایی که صحبت سر قضیه آریاییان و مسئله کوچ و این چیزا هست آقای بریانت معتقده که در زمین این قضیه آریاییان و مسئله کوچ اتفاقی که توی اون دوره افتاده حالا به خاطر میگم همین مسائلی که امروز به نظر ما کودکانه میاد مثلا این که نه ما نمیتونیم با این هندی های مثلا سیاه چرده هم تبار باشیم اینا اصلا آریایی باید مثلا حتما بلوند باشه چشش آبی باشه نظری که یه دانشمندی به اسم گایگر آلمانی میده اصلا هیچ معلوم نیست پایش از کجاست یعنی فقط اولین بار این رو گفته <تصفيق> که آریایی باید حتما بلند باشه بعد چشمش آبی باشه قدش اینقدر باشه و اینا هرکی از این ویژگی های چیز خارج بشه آریایی, آریایی ن ما نمیتونیم با این هندی ها ریشه باشیم قش مثال میاره ها اینا رو من همینجوری دارم نقل می‌کنم مثال های مستندش از خواهش کنم دوتا کتاب رو ببینن که که دوست دارن در این زمینه پرورش کنن. که مگه میشه ما با این راننده ریکشاه های سیاپوست هندی همتبار باشیم نه اصلا امکان نداره خلاصه با این پیش زمینه به اینجا میرسن که به این نتیجه برسن که نه ما با این سیاه ها همتبار نیستیم و یک نژاد یک زمانی که فرق داشته حالا زبانش و چهرش و این چیزها از شمال شمال غربی وارد هند شدن اینو کاری با اینا ندارم اینا بحثای مفصلیه که نظریای مختلفیه که هست تو باید رفت خوند اما بریاند میگه که خلاصه پس از همه اینها یک نتیجه کلی اولیه دانشمندهای اروپایی گرفتن اون نتیجه کلی و اولیه هم این هستش که یک کوچی اتفاق افتاده و این کوچندگان لزومن یک جای مشخصی به اسم یک سرزمین مادری مشخص داشتن یک جای محدودی بوده زبانشون همین گروه زبانهایی هست که حالا اون موقع پیدا کرده بودن به عنوان زبانهای هندو اروپایی هندو آریا و بر اساس پیش فرض اتفاق افتادن یک کوچ اومدن داده های باستانشناسی و زبانشناسی رو بررسی کردند. یعنی همیشه فرض اولین بوده که کوچ اتفاق افتاده بعدا اومدن داده های باستانشناسی رو بر اساس این فرض بررسی کردن که این آقا معتقده که اگر در ذهن ماها کلن از 2 سال پیش تا الان اصلا قضیه‌ای که کوچ اتفاق افتاده وجود نداشت فرض کنید اصلا ما هرگز همش چیزی رو نشون اون موقع ما داده‌های باستان‌شناسی و زبان‌شناسی مون رو به گونه دیگری بررسی می‌کردیم چون یه نتیجه از پیش نداشتیم که حتماً بخوایم به اون نتیجه برسیم آه. نتیجتا اصلا نتایج این پژوهش‌های باستان‌شناسی زبان‌شناسی اصلا یک چیز دیگری می‌شد ولی الان چون همش میخوایم به اون کوچ برسیم داریم باز داده هامون رو یافته هامون رو بر اساس اون نتیجه که از قبل گرفته شده 200 سال پیش بررسی میکنیم بله. اون رو اصل قرار میدیم و بقیه آره. و سایر بقیه یافته ها رو میخوایم در راستای تایید اون اصل دقیقاً. به کار ببریم. دقیقاً. بلده. بلده. تمام اصرارمون بر اینه که اون رو ثابت بکنیم. بله. خیلی متشکرم دکتر حالا فرمایشو تا اینجا باشه ما بازم خدمات شما خواهیم رسید. فیروزی ما تو برنامه گذشته در خواهد شما نبودیم و بحث استور شناسی و بحث همچنین باستان شناسی رو داشتیم و محروم بودیم از حضورت با توجه به اینکه شما در مبحث باستان شناسی کار کردید چه مدل هایی در دنیا هستش که اونها تونستن نتیجه بگیرن تاریخ خودشون رو باستان شناسی کنن و ما ایرانی ها نتونستیم از چنین مدلی استفاده بکنیم و از این راه کار استفاده بکنیم و اگه استفاده بکنیم میتونیم تاریخ خودمون رو باستان شناسی بکنیم و از این حالت در بیاییم با درود عرضم خدمتون اگر متون 60 سال پیش باستان شناسی غربی رو شما ببینید مثلا آقای کامرون اینا دقیقا عین باستان شناسی امروزی ایرانی صحبت میکردن یعنی ازش نوشته ما داریم که قشنگ اومده نوشته که این متون بدون نهرنی را به گیلگامش اینا صحبت می‌کنن ما نمیتونیم روشون نظری بدیم اینا افسانه است من نمی‌شناسیم ایشون نمیدونیم چیه ها اینا قصسه دقیقا بعد از 60 سال پنجاه سال بعد از آقای کامرون دقیقا اروپایی یه چیز دیگه دارن می‌نویسن یعنی اینا رو مانند یک پادشاه واقعی بله توی کتاب‌های دانشگاهیشون دارن تدریس می‌کنن به عنوان پادشاه خب کاری که اینا کردن کلاً چه باستانشناس غربی در مصر چه باستانشناس شرقی در چین یه کار خیلی ساده بود یعنی اینا حسیت هم نشکافتن خیلی ساده یعنی رفتن گفتن که از روش راستی استفاده میکنیم اگر این متون قصه صرف باشن که ما چیزی نباید در واقع پیدا کنیم اگر بخوان داده در خودشونشون نشون بدن به هایی باید بروز کنه بار اول همه اینام شانسی رخ داد برای مثال میخوام از مصر درقه شروع کنم از مصر و یونان یعنی از غرب بیایم به شرق یه معدنشی آلمانی به اسم شیلیمان این بچه که بود پدرش یه آموزگار بود و به این پسر شبا که میماز خونش ایلیات رو داستان ایلی رو تعریف میکرد انقدر ذهن این بچه تاثیر گذاشت این داستان گفتنها که دو ده سالی که بلنش رو گفت من تروبا رو چون از خاک آلمان. به این حرفا میخوندید. ان جاف فعلی باستان شناسی ایران. و میگفتن اینا قصه است. در واقع خیلی شگفتزده نشو. بعد این آدم بر... خب به هم بزرگ میشه، معدنشی میشه، ثروتمند میشه. وقتی ثروتمند شو گفت حالا وقتشه که من برم به آرزوی بچه‌گیم برسم. خیلی عادتاً آدم باستانشناس اون روزم نبود. یه سری نامنگاری کرد به باستان شناسی آلمانی، اینا بهش خندیدن، اصلا جواب ایشون ندادن. بعد خیلی ناراحت شد، رفتش به دولت عثمانی، بهش اجازه حفاری دادن. به شهر یک چیزی منتقل نکن این آقام شروع کرد توام کرانه های شرقی دریای اجه رو کاوش کردن از روی نشانه ایلیات بعد این داشت تمام میشه آخرین کاری که کرد و باید شد که باشه پاچه های شلوار رو زد بالا و گرما سرمایه آبای رو امتحان کرد که با ایلیات کدوم میخونه و دقیقا نقطه رو پیدا کرد همونجر رو کن و اون چیزی که ما انب و بعد خیلی جالب بعد از این میشه یعنی میاد نامه میزنه به باستانشناس آلمانی میگه آقا من همون نقطه رو پیدا کردم با همون الگو با همون تفاصیر با همون جغرافیا و دور آلمانه به جواب میدن مسخرهش میکنن همون نامه ها رو میزنه به باستانشناس انگلیسی و اینا نه تنها تحسینش میکنن بلکه ازش دعوت میکنن که بیاد به اونجا و داشته هاشو نشون بده ولی خوب این اتفاقات نمیافته. ولی اون چیزی که شیلیمان کشید بیرون، پیگیرش باستانشناسای انگلیسی شدن و امروزه ما میدونیم که آقای شیلیمان یه خواستی جامعه یونان داره، براش آرامگاه هم ساختن با چه شکوهی و به حرفاشم مالان یه کتاب مقدس اعتبار میزنن چون بخشی از تاریخ یونان رو از دل افسانه کشید بیرون. یعنی این شاهکاری بودی در دنیای یونان و بزرگتر از اون دنیای باستانشناسی انجور که ما میتونیم به متون کهن اعتماد کنیم، قصه نیستن. موازات این تو مصر ما داستان داشتیم یعنی یه آقایی بود به سهوارکارتر این خیلی اعتقاد عجیبی داشت بین اون همه چی که مصر داشتن می این آدم باستان شناس بود این خیلی اعتقاد عجیبی داشت که این سلسله نامه های مصری میتونن درست باشه بعد کارهایی مختلفی هم می این و این کنار هم میذارش میکفت اولی از سلسله این با اون اسم یونانی شده بعد یکی باشن بعد توصیفات این یارو مصریه مثلا اون فرون مصری در یونانی اومده این هم زندگی نامشه حالا سازه هاش اگر این باشن من اون سازه رو باید برم پیدا کنم رفت و سل سر هدهم کار کرد و اون آرامگاه مشهور توتن آمامون رو پیدا کرد یک کویری که 100ها کیلومتر روی قطعاب هم شما پیدا نمیکنه این آدم با منشه قدرمثل باد کول باستان امروزی ایرانی نیست رفت با شطور و بیابون های. صحرای م با در, ری در ری فراعنه مصر اونجا اینا رو کشی بیرون و خب این آدم یادان داره احترام خاصی تو جامعه شناسی از اون روز به بعد مصر شناسان فهمیدن که میتونم به متون احترام بذارن باور کنم ولا نه تنها اولین فرام از اولین سلسله رو اثبات کردن ولی قبلششان پیدا کردم شما فکر کنید که برید کی مرس سر متون ایرانی رو قبلش رو پیدا کنید چیزیگر هم تو ایران می بعد شما به ببینیان رودان همون جایی که آقای می میگفتش که اینا افسانه هستند. یه آقای لایاردی بود این آشوشناس بود این هی اونجا رو میکاوید میکاوید که ال افتن خیلی چی بود. عتیقه دوست بود. این خیلی... ولی خب دنبال اون راهی بود که بتونه یک جوری این سلسله های قدیم رو اثبات کنه. این آدم موفق نشود ولی بعدها اونم میگن با این کابوش های دیمی که انجام می‌کردن نام نامه‌های سومری پیدا شدن. دقیقاً همون اسامی که متون یونانی داشتیم و به صورت بین و نرننیش ما متون بین و پیدا کردیم با همون ترتیب به همون تعداد افراد و امریکایی دقیقا همون موقع دست گ داشتن که اینها باید پاد واقعی باشن اگر سال اسطوره ایدانسی و چیزار سال ما اینها رو امروزه طبیعیشون میکنیم و این کارو کردن از بین و خارج بشیم میاییم به چین چین یک یکشهاعت بسیار جالب با فرهنگ ایرانی با تاریخ نویسی ایرانی داره اینه که این هم دقیقاً سنن تاریخ میویسی بومی داشتن یعنی برایشون یونانی نبوده کسی بنویسه این برای متون دوره های ایرانی پیش از مات های ایران هم همخانی داره این یعنی شما هیچ متن یونانی نداری که اشتر پیشتری کنی صحبت کن دو دو سلسله گمشوری مملیکت چین همین ویژگی داشتن از سلسله سه متونشون اینا چیز داشتن سند داشتن و این هزار و سر پیش از قبل از اون رو انقدر متون پیچیده و افسانه ای نوشته بودن که اینها یه نصر به مسخره کرد یعنی گفتش که دیگه بس صحبت کردن از این چیزا و اینا رو به دنیا میخنده ای میخوام بحث کنیم ما اصلا این سلسله سوم باستان شناسی تاریخیمون رو بر رسم میشیم قبل از اون گنگه بیش از تاریخ بعد سر همین مشکلات بعدی پیش یعنی ژاپنی ها ادعای میکنن که ما قبل از اون تاریخ سلسله سومم اونجا بودیم از این داستان ها و اینا جوابی نداشتن بدن تا اینکه یه آقایی به اسم لیو این محتون رو خوند و میدونست که چینی ها قبلا تاریخشون رو روی چی می نوشتن یه روز خیلی شانسی میره به در واقع عیادت دوستم بیمارش میبینه روی لاک های لاک پشت که اینا مسارف داروی داشتن یه سری خطوط قدیمی هست بعد اینا رو از طرف که بیمار بود میگه آقا اینا رو بده به من و از کجام به او خریدی بهش میگن میگه فلان دارو فروش عتاارری من اینا رو پیدا کردم همون شب بلند میشه میره در خونه اتریار می هر هرچی موجود داشتین ازش خریداری میکنه. و میشین اینار کاف میکنه میونه که این دقیقا متن درون مایش درباره دو تا سلسله گم شده اون روزگار چین هست. خیلی این جالب بود، اینو گزارش میده به درباره چین و خوبه. کاری انجام نمیدن ولی این بایگانی باعث میشه که نسل جدیدی که باستان شناسای نوین چینی که میان اینا رو پیگیری کنن برن دوم و دقیقا ای که اون توصیف کنن بگشن بیرونی شهانم پیدا کنن و شهرها رو همینطور یعنی یک انقلابی در باستان شناسی چین شد و کاری کردن که باستان شناسای غربی که اینا رو مسخره میکنن به خاطر متونشون همون کاری که بابا متون فعلی ما میکنه به سر تسلیم فرود بیارند و بگن که نه ما واقعا اشتباه میکنیم اینا مکتوب جفتشون هستن تمسخرشون در از 20 سال به چه ستایشی تعلیل میشه و الان دنبال سلسله اولی که پیدا کردن نقطه اش هم آثارش هم فقط دنبال این متنیان که ثابت کنه همون سلسله هست این دنبال این هم چیزی الان تو موزه هاشون برید میگن فلان چیز از 2250 پیش از میلاد منصوب به دوره شیعه در موتون خب شما تصور کنید و جاپنی هم کاملا خونسواه کردن ادعاشونو با این کار شما تصور کنید که ما بخوایم این کار رو برای ما سال قدشته از باستان شناسی چین که این کار رو کردن حالا ما بعد از ست سال تازه داریم به این فکر کنیم که متون و کمان ما میتونن اعتبار داشته باشن الان دقیقاً بی سیکن دارم میخندن به این قضیه و میگن که این حرفا غیر علمی است که دنیا از این طرف گذشته یعنی اثبات کرده پله جلوتر رفته این وضعیتی است که فعلا ما دوچاهش هستیم و بر من جالب هستش که ما در همه علوم و در همه کارهای همین حتی باستان نگاه نگاهمون به بیگانه هاست که از چه روش استفاده میکنن ولی در این دو سه مورد که ارسکرند این نگارش متون ما فکر میکنیم تو افته بافته هستیم و متون ما کاملا افسانه بله خیلی متشکریم جناب آقای فیروزی عزیز استفاده کردیم از صحبتاتون واقعا حالا شما الان متن افسانه Gilgamesh رو میخونید یا در کنارش متن شاهنامه رو میخونید خب حالا اگه میار رو بر افسانه و اسطوره قرار بدین خب متن Gilgamesh که افسانه ایتره که اسطوره ایتره که بسیاری از اون ویژگی های اسطوره و افسانه ای که در واقع با نام میتولوژی تعریف و توصیف شده بیشتر برجستگی ها و ویژگی های اون رو داره میبینیم که چنین متنی داره تبدیل میشه اصلا به یه متن تاریخی و تقریبا این پذیرفته شده در قرن 21 یکم و امیدواریم که در کشور ما هم پژوهشگران و استور شناسان و باستان شناسان دنبال این باشند که بقیه متنهای ما که فکر میکنیم افسانه و استور است با نشان شناسی و کمک با از علوم دیگر همچون علوم مثل زبانشناسی هواشناسی جغرافیا، ها و اقلیم شناسی بتونیم تاریخ رو مجددن بازشناسی بکنیم و تاریخ سرزمین و قلم میانی رو مجددن بازنویسی کنیم خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی و همچنین کارشناسان گرامی وقت برنامه رو به پایان هست قسمت پنجم این برنامه در این لحظه به پایان میرسه شما رو تا آغاز قسمت ششم این برنامه به خداوند متعال میسپاریم خدا ها رو نگه دارد.